بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم خشحال وخرسندين كامروز در خدمت سخنران کشوری شخصیت فرهیخته و فکرمند سخنران استان هرمزگان بلکه سخنران همه کشور ما جناب شیخ استاد محمد صالح پردل حفظه الله تعالی هستیم تشریف آوری ایشان را به حوزه علمیه خیر مقدم عرض می‌کنیم ایشان با هم همرا که تشریف آوردند در حقیقت چشمان همه ما را روشن کردند بعد از شهادت استاد مرحوم زیایی رحمه الله تعالی ایشان از شخصیت‌های سخنران و مطرح کشور ما شدند و هستند و الحمدلله بر همون خط و منهج راه را ادامه میدهند از خدای متعال برای این سرور فرزانه توفیق متزاید را از پروردگار متعال مسئلت داریم حوزه علمیه انوارلوم لوم خیرآباد با پرسنل و اساتید در حد 60 نفر و طلاب در حدود 700 نفر از حوزه برادران، منهج فارسی و عربی، شعبه حفظ و حوزه خاهران الحمدلله مشغول خدمت به دین هستند و در اینجا در تمام شعب و در زمینه های مختلف از سایت و همچنین ثقافت و مطبوعات همچنین دوره تحفیز قرآن و شعبه تخصص در فقه و الحمدلله شعبه دیگر الحمدل فعال هست و از کل کشور طلبه های اینجا برای تحصیل میان و خوزن با تمام قدرت و توان خود در جهت امکان دهی و دهی به این طلاب هیچ کوتاهی ندارد و بیشتر من وقت نگیرم به خاطر که همه ما و شما مشتاق هستیم که از سخنان و نسایه و دل های جناب استاد شیخ محمد صالح پردل استفاده بکنیم با یک سلواتی به استقبال ایشان می رویم من از ایشان دعوت می کنم که تشریفی آورن و ما را مستفید بکنند رضوالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و السلام و رسول الله و علیه و اصحابه و من و الله همما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و بحکاته خداونده تبارک و تعالی رو بسیار سپاس و تشکر میکنیم بخاطر همه نعمت های خوب و توفیقات مفید و ارزشمن و ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت بیدین و اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت و در یک جمله حسن الخاتمه در همه امور و شعون زندگی عوض بالله من الشیطان الرجیم اما بکن من نعمت فمن الله هرچی نعمت و امکانات در اختیار شماست از جانب الله هست اگر دیگران باور نداشته باشند خطعا شما باور دارید که هرچی امکانات و نعمت در اختیار بندگان خدا هست از جانب الله هست و اینو دارید هم آموزش میبینید هم آموزش میدید خب اگر امکانات و نعمت‌ها از جانب الله هست و برای ما و شما ایجاد شده یا در اختیار ما و شما قرار داده در حقیقت یک ظرفیت سازی کرده چون خاصیت هر نعمت مفید بودن هست رشد و توسعه و توانمندی هست خاصیت نعمتهای خدا اینطوره توصعه ایجاد میکنه، توانمندی اقتدار تعالی ترقی خاصیت نعمتهای خداست این خاصیت زمانی تحقیق پیدا که نعمت تو در جهت اهداف خلقت اون نعمت به کار گرفته بشه هر نعمتی براش یک هدفی مشخص شده اگر تو اون هدف در اون راستا به کار گرفته بشه جواب میده و این خودش کاملترین شکره که نعمتها رو ما از مسیر هدفش منحرف نکنیم. اگه منحرف کردیم جواب نمیده. جواب معکوس میده. نه تنها برداشتی نخواهیم کرد بلکه متضرر خواهیم شد. ما امروزه از نداشتن امکانات و نعمتها رنج نمیبریم. از منحرف کردن اهداف وجودی نعمت فزداریم رج میبریم. در اوج دارایی ندار هستیم. در اوج توانمندی ناتوان توان عاجز این خیلی درناکه نعمت رو باید در راستای فلسفه وجودیش قرار بدید این کاملترین شکره کاملترین شکر به کار گرفتن نعمتها در جهت اهداف خلقت نعمتها و وقتی این شکر تحقق پیدا بکنه شکر عملی هم خدا از ما خوشنود میشه راضی میشه هم خودمون توصیف پیدا میکنه و چقدر خدا خوشحال میشه که ببینه بندگانش نعمتهاشو درست و صحیح استفاده میکنن فرصت ها نعمت ها هستن پس ما فرصت ها داریم و نعمت ها داریم و ظرفیت ها داریم و تهدیدات داریم ما اگر فرصت ها رو درست استفاده بکنیم تحدید منتفی میشه و وقتی مسلمان فرصت ها رو درست استفاده نمی کنه، تهدیدها ها فرصت رو ازش می یه چیز طبیعیه اگر نعمت‌ها و فرصت ها رو درست استفاده نکردیم تهدیدها فرصت‌ها فرصت رو از ما می گیرن. و عاملش هم خودمون بودیم ولی وقتی از فرصت و ظرفیت و نعمت‌ها درست استفاده میشه، تحدید هم تبدیل به فرصت میشه 500صد تا طلببه شبانه روزی سیصد هم خواهرا. نه که برای کل ایران کافیه برای کل جهان اسلام و کل جهان هم کافیه 500 نفر مسئولیت پذیگیریم. وزیف شناس فداکار ایثارگر میدونی چیه بعضی انسان ها خودشون به تنهایی یک امت هن. این سوری انشراح خیلی سوریه همه سوره های قرآن در حقیقت همه آیه های قرآن یک فرمول و یک قاعده برای بهتر زیستن هست درسته ما برای سباب هم باید بخونیم قرآن چون تعبض دیگه هر حرفش انسان دهتا حسنه حسنی دیگیره. ولی زندگی مسلمان تنها سباب درش مطرح نیست بحث حاکمیت الله در روی زمین هست سوره انشراف وقتی بهش دقت می واقعا تفکر میکنید خیلی را بروشم می کنه خصوصا برای دعوت کردن پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند الماهر فی مع سفره الکرام و او و كما قال صلی الله علیه و ماهر در قرآن همراه فرشتگان پاک و بزرگوار و منکر الله هستند اینجا مهارت سه تا مهارت هست یکی مهارت در تلاوت یکی مهارت در فهم و درایت و یکی مهارت در به اجرا گذاشتن اون فهم و درایتی که حاصل شده از قرآن این سه تا مهارت تحقق پیدا بکنه انسان همیشین و همراه فرشتگان و ملائک پاک و گرامی و نیکوکار الله میشه سه تا مهارت هست آوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرف لکه صدرک آیا ما شما رو خطاب پیانبره صدر باید صدر گشاده نکردیم وسعت نبخشیدیم علما میگن انشراح صدر با سه چیز حاصل میشه یک صبر صبور بودن دو دور نگاه کردن سه مخالف پذیر رفتند کسی که انشراح صد نداره صبور نیست یا کسی که صبور نیست اینطوری بگیم انشراح صدر نداره کم حوصله است کم تاقته دلش بزرگ نیست دیگه زود از کوره در میره پس اولین عامله انشراح صدر صبور بودنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم درباری نماز میگه از صلات نور روشنایی نوره. اما درباره صبر میگه از صبور بیا درخشندگیه. مهمترین عامل انشراح صدر صبور بودنه. سبر و پیامبر صلی الله علیه همه تون شنیدید، خوندید، مطالعه کردید چقدر سبر بوده این درباره ما شما میکنه باید صبور باشید صبر بر عقص علم بر تعلیم و تعلوم. همام ابو هنگیخ رحمت الله علیه در اون زمان چهار هزار شیخ ملاقات کرده. چهار هزار استاد ملاقات کرده. چهار هزار عالم ملاقات کرده. زانو زده. زانوی تکلماز و ادب. خیلی هم. چهار هزار. بریزین میگین همه شو بخونید. ترس بزرگی توش هست همینطوری کسی امام نمیشه در اون زمانی که وسایل نقلیه خیلی محدود بوده چارپا بوده هم برای همه کس فراهم نبوده طوفان بوده شن بوده بیابان بوده کم آبی بوده راهزن بودن مسافت ها خیلی دور بوده همه علما و شیوخ هم یک جا که نبودن یه شیخ رو میخواست میبینی یک حدیث بشنه یک ماه پیاده میرفته چهار هزار شیخ رو کرده صبور بودن افق فکرین تو دور بردن و دور نگاه کردن. یعنی دید وسیع داشتن. دعوتگران و مربیان و مصلحان با دیدشون خیلی وسیع باش. هرچی دورتر نگاه میکنید دیدت وسیع میشه. می شود. یعنی شما الان روی زمین شاید دیدت خیلی دال باشد. اگر تو هلیکوپتر سوار بشیند یک کمی بالا بره مثلا دیویز قدم بالا بره از بالا نگاه بکنید افق دیدت وسیعتر میشه اگه پونسر قدم هواپیما بالا بره نگاه بکنید افق دیدت وسیعتر میشه بعد دیدش صلی به علیه خیلی وسیع بود با وجودی که از جزیرت العرب خارج نشد مگر دوبار ولی چون دیدش به کل بشریت بود دیدش به همون جایی که دیدش رفت به همون جایی که فکرش رفت هم در زمان خودش هم بعد از زمان خودش به افاق رفت چون نگاهش نگاه بلندی بود نگاه زیر پاتون نکنید نگاه خیراباد تنها نکنید دومین عامل انشراح سدره دور نگاه کردن وفق تو وسیع بکن تنگش نکن چون وقتی تو فقط تایباد و خیراباد و این منطقه رو زیدید فکرت هم در همین حد میشه برنامه در همین حد خیراباد میشه و بعد کم میارید سوم مخالف تذیرفتن قرار نیست که هر کسی همفکرتون نیست از صحنه خارجش بکنید حستش بکنید همچی چیز قرار نیست یا شروع بکنید بر علیهش صحبت کردن خودتو به فرسایش میکشید و تقابل ایجاد بکنید هر مخالفی معاند نیست این خیلی مهمه کسانی میتونن انشراح صد داشته باشن که بتونن مخالفیشونو نمیتذیرن هر کسی اختلاف نظر اختلاف سلیقه باش داده بیتونه بپذیره این نشانه است ای صدر شماست به نتیجه میگیرید همون مخالف هم اگر موافقت و نشته مخالف منصف خواهد شد. این تو دوت، این نگاه تو زندگی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نگاه بکنید این آیه خطاب به پیامبر صلی وقتی قدرت هم گرفت مخالف من دخل دار ابو سوفیان ابی سوفیان فهو آمین هر کسی به خانه ابو سوفیان هم پرمهنده بسیده در با وجودی که ده هزار مسلح آماده شهادت به امرش بودن ولی شمشیرش از غلاف دار حتی به مخالفینش گفت اذهب و انتومت تلقا ما ایمان منافقانه نمیخواد که به زور شمشیر دارد هر وقتی قانع شدید اهل ما سهرم بیگن که هن و سفیان وقتی که پیانبر صلی اللہ وسلم با مجال سفیان وقتی که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم رایدینش آمد اطراف مکه شب اطراق کردن رو بالکن خونه ایستاده بودن نگاه میکردن بعد از 21 سال مبارزه و بعد در گوشی با همدیگه صحبت کردن یکیش به دومی گفت زن روزی که مکه رو محمد محمدو از مکه بیرون کردیم دل اهل مکه هم با خودش برد اون یکی گفت مرد بعد از 21 سال مبارزه به این نتیجه رسیدیم که اسلام از کانال دلواره و دل چه چیز رو تصویرش میکنه گذشت اف بخشش چشپوشی عدم انتقام اونهایی که میخوان بزرگ بشن رهبر بشن مربی بشن اگه خوب به انتقام داشته باشن چی میشه منافع داره اونها خب به انتقام ندارن حالا که من قدرت گرفتم اینام با ما چینین و چنان کردن حالا پس همه رو از دم تیغ بگذرم اینجا بود که دیگه ابو زانو زد انده جگرخار زانو زد ما پیرو به منافق نمیخوریم به دردمون نمیخوریم بعدشون فرصت بدیم هر وقتی به قناعت رسیدن اهلا مرس اهلا علم نش صدرک این قسمت اوله ستا عامل برای انشراح صدر صبور بودن دید وسی داشتن و مخالف تظیررفن. فرهنگ همزیستی تعالش قسمت دوم آیه و الذي ما اشتباه استراتژیک، از تو دور کرده خوب دقت بکنی میگه اشتباه های استراتیجیک کمرشکن این برای هم هست ما انسان هستیم اشتباه هم میکنیم ولی اشتباه استراتژیک نباید بکنیم کمرشکن که دیگه نتونیم بلند بشیم و مردم هم بلند بشن انک وزرگ الذي ان غذا بهرک اشتباه های کم شهایی که تو مجال دعوت باشه از تو دور کردی. من امروز که بدون هماهنگ آمدم به من گفتم که امروز یک شنبه جلسه مشورتیه مدرسینه خیلی برام جالب بود یکی از عواملی که کمک میکنه ما اشتباه های استراتژیک نکنیم مشورت مشورت مانع اشتباه های کمر شکن میشه با هم بودن و با هم مشورت کردن نما یأکل و من الغنم القاصیه فرموده گرگ گوزفنده رو شکار میکنه که قاسی شده یعنی از گله جدا شده تنها شده پس نباید ما تنها باشیم باید با جمع باشیم تو جم هم با هم بگه مشورت بکنیم ما ندانم من استشار کسی که مشورت میکنه به شیمان نمیشه ولا خواب من استخار کسی که استخار میکنه اونم خار و زلیل نمیشه ولا عال من کسی که اقتصادی عمل بکنه همیشه غنیست فقیر نمیشه البته یه نکتهام بگم دا وقتی ما منظورم دعوتگران و خطبا مردم دعوت به قناعت میکنیم. اینو داشته باشید که قناعت در تولید نیست قناعت در مصرف هست انسان مسلمان تا می تونه تولیدات اشتیار میکنه یعنی اگر کسی برای حق پشتشم مال داره نگه من دیگه کار نمی چون خانه هم این بشه قناعت در تولید با تعالیم دینی منافات داره اما قناعت در مصرف است قسمت سوم آیه و رفان اله ذکرک نام تو رو بلند کردیم اشخاص ما باید تبدیل به شخصیت بشن و تبدیل به برند بشن. مدرسین ما طلاب عادی ما باید وقت بذارن برای دعوت و بندگان خدا تا تبدیل به یک شخصیت بشن. تبدیل به یک برند بشن. اینجا خداوند درباره پیامبر صحبت میکنه صلی الله علیه و آله میگه رفعنا لك این معنی نیست که خودمون دنبال اسم و رسم و شهرت باشیم وقتی وقت گذاشتید برای دعوت خدا نام تو رو بلند میکنه تبدیل به یک شخصیت میشه پس اینجا لحاظ کرده خداوند اشتهار دعوتگران و علماء و شخصیت ها به شرطی که خودشون لنبال اسم و رسم و شهرت نباشن که یک نعمت هست و رفع انعاله کرده این تنها برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست برای هر دعوتگری هست پس این سوره سه تا قسمت مهم داره علام نشرح لکه صدرک انشراح و بدعنا انکه بزرگ استباهی استباهی استراتژیک کمرشکان و سبهم و رفعنا لکه ذکرک. قل عملو فسیرالله الله اگه امام ابو هنیفی و امام شافیدون بالشه را آورد. ولی خالص و مخلص بودن فداکاری کردم. خدا نامشونو بلند کرده برند شدند برند شخصیت شدند اسمشون میبریم ایمانمون زیاد میشه سیرتشون میخوریم. این سه قسمت اصلی این سوره رو این سه تا محور میچرخه همش برای دبرگرانه اما تو ساسه تا قسمت آخری شمکلی اون دنبالشه دیگه فا اینمع الاسر یسرا همه تون میدونید که اینه حرف تحکید و نسبه برای تحکیده خداوند این مطلب رو اینجا داره تذکر میده به دعوتگران و علما که از آسایش و آسانی آسایش و آسانی تولید میشه. این مقوله خیلی غلطه که از یسر یسر تولید بشه از راحتی راحتی تولید بشه ما فکر میکنیم از راحتی راحتی تولید میشه این غلطه تو منطقه قرآن نیست به همین منظور تاکیدم کرده چون یک نوع ناباوری هست بار اول بشنوید که از سختی آسانی تولید میشه شاید نمیشه از آسانی آسانی است از سختی سختی تولید میشه. دیگه محوس ریوس رو ان معلوس ریوس را. هر کسی میخواد راحتی داشته باشه، یسر داشته باشه. آسایش و آرامش داشته باشه باید قبول زحمت بکنه. این برااد های جماعتیمون خیلی راحت میگن دیگه. زحمت رحمت درسته؟ قبول زحمت بکن تا رحمت نسیرت بشه نظر بشه حرکت بکن تا برکت نسیرت بشه هجرت بکن تا نصرت نسیرت بشه پس از آسایش آسایش نیست از قبول زحمت و سختی اینمه الاسر یسرا اینمه الاسر یسرا فاذا اذا فرابت فنصب هر وقتی از یک کار خوبی، ارزشمندی فارغ شدید دوباره قبول سختی بکنید نسب تحمل مشقته امام شافیر رحمت الله علی در دیوانش میگه سافر، شاعر بود دیوانی داره میگه سافر تجد عبادن هم من تو فارغ بود وانسب فا این لذیذ العیش فنسا دید ان ی رایت وقوف الماء یفسده ان و الا لم اجر لم یثبی میگه میخوای دوستان جدیدی تو زندگی باشن مسافرت برو سفر تجید پیدا میکنید دوستانی غیر از دوستانی که ازشون جدا شدید بعد میگه اگر میخوای لذت زندگی رو ببرید فن صب، فاکن لذیذ عیش فن نسبی، سختی بکن در زندگی، اگه میخوای لذت زندگی تور برد، تو, تو دوباره هم همینه. تاریخ و تجربه نشون داده، اولامایی که هیچ بیشتر بوده، شکنجه هاشون بیشتر بوده، سختی های بیشتری تحمل کردن قبلاً نامشون زندگیشون رو ببینید. برکت زندگیشون رو ببینید. بگه علماء زندگیشون رو ببینید. برکت زندگیشون رو ببینید. علماء مشتهدین کم بودن. علماء بزرگ و دعوت داران کم بودن. اما شخصیت ها اونهایی که تبدیل به شخصیت و برند شدن تعدادشون مهمده. دنباله چی میگه؟ حکیمانه داره میگه. این ای تو بکو فلما ای خسده بود. اگر آب تو هوز تو استخری یه جا راکت بمانه فاسد میشه انساحه اگر آب تبدیل به چشمه شد و حرکت کرد پا و پاک میشه آب دریا هم اگه نداشته باشه دو میده خدا تو دریا جزرومت گذاشته انواج گذاشته انواج هم دونمون امواج هست انواجی که در داخل عمق ها شکل میگیره انواجی که بیرونه انواج داخلی دریا رو پاک میکنه هر چی آشواله دریا نجاست تحویل میگیره. چون در حرکته چشمه هم اینطوره ولی آب حوز یک هفته دو هفته مون چه فاسد میشه جلبک میزنه بد میشه این تشبیه میکنه انسانی که در حال حرکته انسا حقاب و علمی اجرد دمیت تبیر دیگه وقتی از یک کاری فارغ شدید بلا فاصله کار بعدی رو شروع کن نگذار بین کارهای خوبت فراغ میفته این فراغ و فاصله اگر افتاد آدم سست میشه همیشه باید در حال برنامه باشید دعوت باشید کارهای خوب مسئولیت تذیری و الى ربك فرغب رب. همیشه راغب باش به سوی پروردگارت همه کارها رو با رغبت به سوی پروردگارت انجام بده و بپذیر خب خیلی خوشحال شدم این ملاقات خدا در حقیقت من غیر میعاد برنامه‌ریزی کرد شاید توی برنامه هم نبوده وقتی آمدیم مشورت کردیم گفتم بریم مدرسین و دلگا با مدرسه رو ببینیم خیلی خوشحالم و خداوند و از این بابت سپاس که این توفیق ایدار کسانی که واقعا دوستشون داریم و همسنگرمون هستن و از دای خیرشون همیشه بهرمندیم و تقریر میشیم با دای خیرشون هم اساطین بزرگواری که تواظب خش بزن برای شاگردشون اجازه دادن در محضرشون سخنده میگه، هم شما سردران دلاب عزیزی که امیدهای آینده امت اسلامی هستید با مسئولیت تذیریتون من در خاتمه ارائزم فقط این مطلب رو میگم که دلمون را به الله بسپاریم این سرزمین پهناور دل که خیلی پهناوره بسپاریم به الله و اجازه بدیم که الله باغبان دل‌های ما باشد علما میگن که اگر دل تو به الله سپردیم و به الله گفتید تو باغبان دل من باش الله بوته های گله خوش رنگ و خوشبو بو دلت می‌کاره یعنی دلت میشه گلستان همه بوته های گل می‌کاره دلت میشه گلستان هر آیه قرآن یه بوته گل خوشبو و خوش رنگ که دل انسان بذرش کاشته میشه و دوم این که مثل باران باشید باران وقتی باره بر سقف مسجد میباره بر سقف کلیسا هم میباره بر سقف مؤمن میباره بر سقف غیر مؤمن هم میباره رحمت و محبتتون و دعای خیرتون از هیچ کس درید نکنید فقط دعا برای آدمای خوب نکنید برای طلابتون نکنید برای اساتیدتون نکنید اون جوانایی که فکر می کنید موسیقی موسیق شدن نراز به دایه اگر همه ما تو حوزه بریم و فقط طلاب و مدارس می رحمت ما محدوده. محبت ما محدوده. مثل باران باش. بر همه می باره. دیگه اگر کسی لیاقه اون باران نداشت همون باران تبدیل به نیشه بل باران میباره اللهم جل جمعن احواز جمعن مرحومن وجل تفرقن همون بعد تفرقن معصومن اللهم تجل لا تجل فینا ولا منا ولا معنا شقیه ولا محرومن اللهم إنا نسألك الهدى ونتقوا الرصف قلبنا اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم المرسلين والحمد لله رب العالمين موفق معي سرور الله السلام عليكم очку are not gonna any time